بخشه بیست و درباره شامی که کاندید و مارتین با شش غریبه خوردند. آنها که بودند؟ یک روز عصر، وقتی کاندید به همراه مارتین آماده شام خوردن با قریبه هایی که در مهمانخانهشان اقامت داشتند، مردی با صورتی دودی رنگ پشت او آمد. با بازویش به او زد و گفت آماده باش که با ما اینجا رو ترک کنی. جا نمانی. کاندی برگشت و کاکان بارا دید. تنها تماشای یک کنگوند می توانست. او را بیش از این شگفت زده و خوشحال کند. از خوشی در پوست خود نمی گنجید. دوست عزیزش را در آغوش کشید. کنگوند اینجاست نه؟ کچه مرا پیش او ببر. بگذار از شوق حضورش بمی. کاکانباو گفت کونگود گند اصلا اینجا نیست او در كنستانتینوپل است ایداد در کنستانتینوپل اما اگر در چین هم باشد باید به با آنجا پرواز کنم بیا برویم بعد از شام از اینجا نمی نمیتوانم بیشتر توضیح بدهم من بردهام اربابم دنبالم است باید برای شام منتظرش بمانم صدا در نیار شام تو زود بخور آماده شو کاندید، سرگردان بین غم و شادی، خوشحال از دیدار دوباره کارگزار وفادارش، متعجب از اینکه او را برده دید، پر از فکر بازیابی معشوقش با قلبی ناآرام و ذهنی گیج، برای قضا خوردن با مارتین که با خونسردی تمام این حوادث را مینگریست، و شش قریبهی که برای گذراندن جشن گوشت به ونیز آمده بودند، پشت میز نشست. کاکامبو که برای یکی از غریبهها ها شراب میریخت با تمام شدن قضا به احترام اربابش به جلو خم شد و به او گفت علا حضرت هر وقت که بخواهند میتوانند اینجا را ترک کنند کشتی آماده است این جمله ها را که گفت خارج شد شامخورها در بحتی ساکت به هم دیگر نگریستند که در این موقع پیش خدمت دیگری در حالی که به اربابش نزدیک میشد گفت علا حضرت ها، تخت روان شما در پادوه است، زورق منتظر شماست. ارباب سری تکان داد و پیشخدمت ناپدید شد. شام خورها دوباره به یک دیگر نگریستند و شگفتی کلی دوچندان شد. پیش سوم ثبوم به سومین قریبه نزدیک شد و به او گفت قربان، باید به حضورتان ارز کنم که علا حضرت می توانند بیشتر از این اینجا نمانند. دادم همه چیز را آماده کردند. سپس او نیز ناپدید شد. حالا دیگر کاندید و مارتین شکی نداشتند که جشن گوشت بهانه بود. چهار رومین پیش خدمت با چهار رومین ارباب صحبت کرد. علا حضرت هر وقت که بخواهند می اینجا را ترک کنند. و مثل دیگران رفت و ناپدید شد. پنجمین نیز مانند دیگران بود. ولی ششمین پیشخدمت، با ششمین غریبه که کنار کاندید نشسته بود، جور دیگری صحبت کرد. او گفت، عجب، قربان، آنها دیگر به اعلی حضرت یا به من تنخواهی نمیدهند. شب را میتوانیم به خوبی در بازداشگاه سر کنیم. شما و من، من مواظب خودم هستم. پس خدا حافظه شما. وقتی همه پیش خدمتها رفتند، شش غریبه، کاندید و مارتین در حالی از سکوت، باقی ماندند. سرانجام کاندید سکوت را شکست. او گفت: آقایان، شوخی خیلی عجیبی است. چرا همه شما از خانواده سلطنتی هستید؟ اطمینان میدهم که مارتین و من نیستیم. ارباب کاکامبو موقرانه شروع به صحبت کرد و به ایتالیایی گفت: این شوخی نیست. نام من آکمت سوم است. من سالها سلطان بزرگی بودم. سپس همان گونه که من برادرم را از سلطنت خیر کردم، پسر برادرم هم مرا خیر کرد. سر وزیرانم را زدند. به من اجازه داده شد تا در اندرونی قدیمی به سر ببرم. پسر برادرم سلطان محمود کبیر گاهی به من اجازه می دهد تا برای سلامتی سفر کنم و من برای جشن گوشت خاران به ونیز آمدم. مرد جوانی که کنار آکمت نشسته بود، پس از او صحبت کرد و گفت اسم من ایوان است. من زمانی امپراتور تمام روسیه بودم. من وقتی هنوز در گهواره بودم از سلطنت خل شدم. پدر و مادرم دستگیر شدند و من در زندان بزرگ شدم. گاهی اوقات اجازه مسافرت دارم. گرچه همواره با محافظ و برای جشن گوشت خاران به ونیز آمدرم. سوو می گفت من چارلز ادوارد، پادشاه انگلستان هستم. پدرم حق سلطنتش را به من واگذار کرد. و من برای نگهداری آن جنگیدم ولی حریف قلبهای هشتصد نفر از هوادارانم را درید و روی صورتشان انداخت. من در زندان بودم و اکنون به روم به ملاقات شاه پدرم خواهم رفت. که او هم مثل من و پدر بزرگم از سلطنت خارج شده. و برای جشن گوشت خاران به ونیز آمده هم. سپس چهار رومین شاه شروع به صحبت کرد و گفت من شاهی از لهستان هستم طالع جنگ مرا از مقام موروسیم محروم کرد پدرم هم همینطور من مثل سلطان اکمت، امپراتور ایوان و پادشاه چارز ادوارد که امیدوارم خدا بهشان عمری طولانی بدهد دل به تقدیر دادم و برای جشن گوشت خاران به ونیز آمدم. پنجمی گفت: من هم شاهی از لهستان هستم. من دوبار بار را از دست دادم. ولی تقدیر موقعیتی دیگر به من بخشید که توانستم بهتر از تمام شاهان سارماتی که در سواحل ویستولا حکومت کرده‌اند، گذران کنم. من نیز تسلیم سرنوشت شدم و برای گذراندن جشن گوشتخاران به ونیز آمدم. تنها ششمین پادشاه باقی مانده بود که صحبت کند او گفت آقایان من مثل شما لرد بزرگی نیستم ولی در واقع شاهی بودم مثل دیگران من تئودور هستم شاه برگزیده کورسیکا مردم طبق عادت مرا اعلیحضرت خطاب می‌کردند وکنون به زحمت مرا قربان صدا میزنند. من سکه ضرب می‌کردم و الان یک شاهی هم ندارم دو وزیر امور خارجه داشتم وکنون به زحمت یک پادا دارم بر تخت جلوس میکردم و مدت زیادی در زندان لندن روی کاه بودم گویی اینجا هم باید همانطور باشد گرچه من نیز مثل شما بزرگواران آمدم تا جشن گوشت خاران را در ونیز بگذرانم پنج پادشاه دیگر با دلسوزی بزرگوارانهی به او گوش هر یک از آنها بیست سکه به شاه تا داد تا به یک دست کت و شلوار و چند پیراهن بخرد. کاندید به او الماسی به ارزش بیش از دو هزار سکه بخشید. پنج پادشاه گفتند این شهروند غیر سلطنتی کیست که در این دنیا موقعیتی دارد که صد برابر هر یک از ما پول میبخشد. و چه کسی واقعا همچکاری می‌کند؟ همین که از میز شام برخواستند به همان شکل چهار والا حضرت آرام که از طالع جنگ پادشاهیشان را از دست داده بودند و برای تعطیلات جشن گوشت به ونیز آمده بودند، وارد شدند. اما کاندید زحمت نگاه کردن به تازه واردان را هم به خود نداد. چرا که فقط به فکر یافتن کنگند عزیزش در کانستانتینوپول بود. بخش 27 سفر کاندید به کنستانتینوپول کاکانبای با وفا از پیش با ناخدای ترک که سلطان اکمت را به کنستانتینوپول برمیگرداند هماهنگ کرده بود تا اتاقی برای کاندید و مارتین در کشتی ترتیب دهد هر دو مرد در حضور والا حضرت بدبخت به خاک افتاده و سوار کشتی شدند در راه کاندید به مارتین گفت شش شاه معزول که به آنها شام خوردیم و تازه در میان آنها کسی بود که من باید به او صدقه می دادم شاید شاهزاده به مراتب بدبختر هم باشند من خودم صد گوزفن از دست دادم و اکنون به آغوش کنگون پرواز می کنم. مارتین عزیز یک بار دیگر پانگلوس اثبات شد همه چیز در نهایت خوب است مارتین گفت امیدوارم. کاندید گفت: اما این تجربه‌ای که در ونیز داشتیم از آن تجربیات باورنکردنی بود. هیچ کس ندیده و نه شنیده که شش شاه معزول در یک مهمانخانه با یکدیگر شام بخورند. مارتین گفت: غیر از چیزهایی که تا به حال به سرمان آمده نیست. شاه ها اغلب از تخت به زیر کشیده می‌شوند. اما افتخاری که از شام خوردن با آنها داشتیم آنقدر جزئی است. که شایان توجه ما نیست. کاندید که در کشتی بند نمیشد، خود را به گردن پیش خدمت سابق و دوستش کاکامبو انداخت و گفت: خوب کونگان چه می کند؟ آیا هنوز مظهر زیبایی است؟ هنوز دوستم دارد؟ حالش چطور است؟ شکی ندارم که در قسطنطینیه قصری برایش خریده ای کاکامبو پاسخ داد: ارباب عزیز، کونگون در ساحل پروپونتیس در خانه شاهزاده‌ای که ظرفهای زیادی برای شستن دارد ظرف می شوید. او در خانه راگوتسکی که روزی روزگاری شاه بوده وکنون اکنون ترک بزرگ در تبعید روزی سکران به او میدهد کلفت است. ولی بدتر از همین که تمام زیباییش را از دست داده و وحشتناک زشت شده. آه، زیبایا زشت؟ من مردی درست کار هستم و وظیفم دوست داشتن او برای همیشه است. ولی با پنج یا شش میلیونی که داشتی چطور به این وضع نکبت بار دوچار شده؟ درست. ولی آیا من نباید دو میلیون به سینیور دون فرناندو دی بارا، ای فیگوئروآ، ای ماسکارانز، ای لامپوردوس، ای سوزا فرماندار اونس آیرس برای اجازه عبور دوشیزه می میدادم؟ و بعد هم که دزدان دریایی با زیرکی باقی‌اش را از ما تاراچ کردند. و ما را با خود به دماغه ماتاپان، به ملوس، نیکاریا، ساموس، پترا، به داردانل، مارمورا و اسکوتاری بردند. گند و پیرزن برای شاهزادهی که تعریفش را کردم کار می کنند و من برده سلطان معزول هستم. چه بلاهای ترسناکی یکی پس از دیگری. ولی از این حرفها گذشته من علماس زیاد دارم. به راحتی می توانم کونه گند را از آنجا بیرون بیاورم. حیف که زشت شده. سپس به طرف مارتین برگشت و پرسید به نظر تو برای چه کسی باید بیشتر دل سوزند؟ امپراتور اکمت؟ امپراتور ایوان؟ شاه چارلز ادوارد؟ یا من؟ نظری ندارم. برای اظهار نظر باید وارد قلب آدم ها شد. اگر پا اینجا بود می دانست و به ما می گفت. گمان نمی کنم. پانگلوس شما با چه مقیاسی بدبختی های انسان و حجم ناراحتیهایش را میسنجید سنجید؟ آنچه جرعت گفتنش را دارم این است که زمین میلیون ها انسانی دارد که صدها ها بار بیشتر از شاه چارلز ادوارد، امپراتور ایوان یا سلطان آکمت سزاوار دلسوزی هستند. شاید حق با تو باشد. پس از چند روز به تنگی منتهی به دریای سیاه رسیدند. کاندید با باز خریدن کاکامبو به بهایی گذاف شروع کرد. سپس بدون از دست دادن لحظه‌ای خود به همراهانش را به یک کشتی بادبانی افکند تا در کناره پروپونتیس به دنبال کنگان بگردند. هرچند زشت باشد. در بین زندانیان دو مجرم بودند که ناشیانه روی پاروها خم شده بودند. و ناخدای اهل لوانتین گاه گاهی با تازیانه چرمی چند ضربه بر های لختشان میزد. کاندید از روی طبیعتش بیشتر از دیگر بردگان کشتی به آنها دقت کرد و از روی دلسوزی به آنها نزدیکتر شد. سیمای مشخص چهره از ریخت افتادهشان به نظرش شباهتکی با پانگلوس و آن جزویت مفلوگ آن بارون همان برادر دوشی زکونگون داشت. این تصور او را تکان داد و دمگین کرد. با دقت بیشتری به آنها نگریست. به کاکامبو گفت راستش اگر به چشم خودم ندیده بودم که استاد پا به دار آویخته شده و اگر از قتل بارون چنان غمگین نشده بودم فکر میکردم که دارن در همین کشتی پارو میزنند. با شنیدن نام های باران و پانگلوس، دو مجرم فریاد بلندی کشیدند. بی حرکت روی نیمکتشان نشستند و پاروهایشان را انداختند. ناخدای اهل لوانتین به دو به طرفشان آمد و ضربه های تازیانه چرمی از سر گرفته شد. کاندید فریاد زد. ناخدا، دست نگهدار، هرچقدر بخواهی به تو پول میدهم. یکی از مجرمان فریاد زد. چی؟ یعنی این میتواند کاندید باشد؟ دیگری فریاد زد. چی؟ یعنی این میتواند کاندید باشد؟ کاندید گفت. این رؤیاست. خوابم یا بیدار. در این کشتی هستم. این جناب بارونی نیست که کشتمش. این استاد پانگلوس است که او را آویزان روی دار دیدم؟ جواب دادند. حقیقت دارد. مارتین گفت. چی؟ این آن فیلسوف بزرگ است. کاندید گفت حالا جناب ناخدای لوانتینی برای آزادی جناب بارون در تنترونخ از برترین بارونهای امپراتوری و استاد پا برترین ماورا و دان تمام آلمان چه خطر می خواهی؟ ناخدای لوانتینی پاسخ داد طوله مسیحی چون این دو طول سگ مجرم مسیحی بارون و ماورا و دان هستند که بیشک برای کشورشان افتخاری بزرگند شما باید برای آنها پنجاه هزار سکه به من بدهید تمام این مبلغ را خواهید گرفت آقا مرا به کنستانتین و برگردانید و در آنجا آن را خواهید گرفت یا نه مرا پیش دوشی زکونگون ببرید ناخدای اهل لوانتین که با اولین کلام کاندید سینه اش را به سمت شهر چرخانده بود به نرمی پرواز پرنده در آسمان پارو زد و کشتی را به جلو راند. کندید صد بار بارون و پانگلوس پا را در آغوش کشید. چطور شد که من تو را نکشتم بارون عزیز؟ پانگلوس پا عزیزم، تو چطور پس از اینکه به دار آویخته شدی، زنده ماندی؟ چرا هر دو در کشتی های ترکیه پارو میزنید بارون پرسید: این حقیقت دارد که خواهر عزیز من در این کشور است؟ کاکام با پاسخ داد: بله پانگلوس فریاد زد. واقعا من دارم دوباره کاندید عزیزم را میبینم؟ کاندید کاکامبو و مارتین را معرفی کرد. آنها هم دیگر را در آغوش کشیدند و فوری شروع به صحبت کردند. کشتی حرکت میکرد و به زودی در بندر پهلو میگرفت. یک یهودی را صدا کردند و کاندید الماسی و ارزش صد هزار را به پنجاه هزار سکه به او فروخت. چرا که او؟ به ابراهیم قسم خورد که برایش امکان ندارد بیشتر از این پول بپردازد کاندید فوری بارون و پانگراس را آزاد کرد که دومی خود را به پاهای آزاد کنندهش انداخت و او را با هایش تر کرد و اولی با سرتکان دادنی از او سپاسگزاری کرد و قول داد که در اولین فرصت ممکن این مبلغ کم را باز بپردازد و گفت ولی واقعا ممکن است که خواهرم در ترکیه باشد؟ کاکامبو جواب داد هیچ چیزی محتمل تر از این نیست چرا که او ظرفشوی است در خانه شاهزاده ترانسیلوانیا فوری دو یهودی دیگر صدا زده شدند کاندید الماسهای بیشتری فروخت و همگی برای نجات کونه روانه کشتی دیگری شدند بخش بیست برای کاندید، کونگوند، پانگلوس مارتین و دیگران چه پیش آمد؟ کاندید به باران گفت اجازه دهید یک بار دیگر از شما عذرخواهی کنم من را به پدر روحانی که شمشیرم را از بدنتان گذراندم باران جواب داد حرفش را هم نزد اعتراف می کنم خود من هم کمی دست با چه بودم اما چون تو میخواهی از بدبختیی که در کشتی داشتم آگاه شوی، برای تعریف میکنم. پس از بهبود زخمایم به دست برادری که دارو ساز انجامن بود، یک گروه ضربت اسپانیایی به ما حمله کرد و مرا رو بود. در بوینوس آیرس، درست زمانی که خواهرم آنجا را ترک کرده بود، زندانی هم کردند. تقاضا کردم به روم، پیش پیش وای کل فرستاده شدم. در عوض به عنوان مأمور خیرات، برای خدمت در کانستانتیناپول زیر نظر سفیر کبیر فرانسه برگزیده شدم هنوز هفتهای در این سمت نبودم که یک روز عصر به طور اتفاقی چشمم به یک ایچ اقلان جوان بسیار زیبا افتاد هوا گرم بود و مرد جوان خواست تنی به آب بزند فرصت را قنیمت شمردم و با او رفتم نمیدانستم که اگر یک مسیحی را با یک جوان مسلمان لخت پیدا کنند مجازاتش است یک غازی حکم داد که با صد ضربه ترکه فلکم کنند و سپس به کشتی ها فرستاده شوم تصور نمی‌کنم چونین اشتباه قضایی وحشتناکی در جایی وجود داشته باشد ولی مایلم بدانم خواهرم در میان ترک ها در آشپزخانه یک شاه ترانسیلوانیایی تبعید شده چه می کنند؟ کاندید گفت اما تو چطور پاندراس اسیس چطور ممکن است که ما دوباره هم دیگر را ببینیم انگوس گفت درست است که تو مرا آویزان دیدی. اگر همه چیز طبیعی پیش میرفت من باید سوزانده می شدم. ولی به خاطر بیاور درست موقعی که میخواستند مرا سرخ کنند رگباری باری زد. چنان بارانی بارید که آنها را از افروختن آتش ناامید کرد. در نبود چیزی بهتر دارم زدند. یک جراح جسدم را خرید مرا به خانهاش برد و تشریح کرد. ابتدا یک برش صلیبشکل شک از ناف تا ترقوه در من ایجاد کرد. هیچ کس بدتر از من از دار آویزان نشده. در واقع مأمور اعدام این تشریفات مهم قاضی مقدس که خادم کلیسا بود، عالی میسوزاند. ولی کارش دار زدن نبود. ریسمان خیس بود و بد گره زده شده بود. یک گره گیر کرد و خلاصه هنوز نفس میکشیدم. چاک صلیبی شک باعث شد که چنان بلند فریاد بکشم که جرا پس پس رفت و افتاد خیال کرد که شیطان را تشریح کرده است از ترس پا به فرار گذاشت و در پروازش به طبقه این پایین افتاد زنش به خاطر سر و صدا از اتاق بغلی وارد شد و مرادید که روی میز با یک چاک سلیمی شکل دراز افتادم حتی از شوهرش بیشتر ترسیده بود فرار کرد و روی او افتاد وقتی کمی حال آمدند شنیدم که زن به شوهرش می گفت عزیزم چه فکر می کنی؟ می خواهی یک مرتد را تشریح کنی؟ نمیدانی که این مردم همیشه شیطان را در وجود خود دارند؟ من کشیشی پیدا می کنم و از او می خواهم که شیطان را از اینجا دور کند. با شنیدن این سخنان به رعشه افتادم و آخرین رمغ های خودم را جمع کردم تا فریاد بزنم به من رحم کنید سرانجام آرایشگر جسارت به خرج داد و دوباره مرا دوخت. حتی همسرش از من پرستاری کرد. پس از دو هفته حالم خوب شد. آرایشگر برایم کاری پیدا کرد و مرا نوکر شوالیه مالت که به ونیز می رفت کرد و وقتی این ارباب از احده مخارج من برنیامد به خدمت تاجری ونیزی در آمدم که به دنبالش تا کنستانتینوپول آمدم. یک روز اتفاقی وارد مسجد شدم. بجز جز پیش نماز پیر و یک جوان جذاب عبادتگر که نمازش را می‌خواند کسی آنجا نبود. سینش اور بود و بین دو پستانش دست گلی زیبا از لاله، گل روز شقایق آلاله، سنبل و پامچال گذاشته بود. دست گلش را انداخت. من برش داشتم و با توجهات فراوان به او دادم. داشتم سر جایش میگذاشتم که پیش نماز عصبانی شد و همین که فهمید مسیحی هستم نگهبانان را سداست. سد. مرا پیش قاضی برد. که او حکم به صد ضرب فلک و سپس فرستاده شدن به کشتی داد. من به همان کشتی و درست همان نیمکت جناب بارون زنجیر شدم. در کشتی چهار جوان از مارسی، پنج کشیش ناپولی و دو راهب اهل کرفو بودند که به ما اطمینان دادند این چیزها هر روز پیش میآید. جناب بارون اظهار داشت که نسبت به من از بی ادالتی بیشتری رنج کشیده است. من اما میگویم که بسیار جایستر است که دستگلی را در سینه سر جایش بگذاری تا اینکه با یک ایچ اقلان لخت پیدایت کنند. دایم سر این موضوع بحث میکردیم و روزی بیست ضربه شلاق چرمی میخوردیم. تا ی حوادث در این دنیا تو را به کشتی ما کشاند و تو ما را با پول آزاد کردی. کاندید به او گفت خب پانگلوس عزیزم حالا که دار زده شده ای تشریح شده ای خرد و خاک شیر شده ای و محکوم به کار در کشتی شده ای هنوز فکر میکنی که در دنیا همه چیز در نهایت خوب است. پانگلوس جواب داد: من هنوز سر حرفم هستم. بالاخره من یک فیلسوفم. بعض آنجا که لایب‌نیتز احتمالاً نمیتواند اشتباه کرده باشد، این حق را ندارم که آن را انکار کنم. به علاوه، پس از پیش برقرار شده عالی ترین مفهوم در دنیا است، مثل پلنوم و ماده نامحسوس. بخش بیست و چگونه کاندید دوباره گند و پیرزن را پیدا کرد؟ کاندید، بارون، پانگلوس، مارتین و کاکامبو داشتند در کشتی ترک داستانهای خود را برای یکدیگر تعریف درباره حوادث آرزی یا غیر آرزی این جهان بحث و بر سر علت و معلول شرارتهای اخلاقی و جسمانی جبر و اختیار و تسلی مشاجره می کردند که به کرانه های پروپونتیس و خانه شاهزاده ترانسیلوانیا رسیدند. نخست این ای که به چشمشان آمد کونگند و پیرزن بودند که حوله را به بند می آویختند تا خشک شوند. رنگ بارون از آنچه چه می دید پرید و آشق دلشکسته شکسته کندید دوست داشتنیش را با پوستی بی رنگ چشمانی خون گرفته، پستانهای آویزان، گونه چروک و بازوانی سرخ و پوست پوست شده، دید. از وحشت سه قدم پس رفت و سپس تنها از روی ادب جلو آمد. کنگوند کاندید و برادرش را در آغوش فشرد همگی پیرزن را در آغوش گرفتند. کاندید سربهای آنها را داد و آزادشان کرد. در همسایگی آنجا باغ کوچکی بود پیرزن برای آینده بهتر گروه پیشنهاد کرد تا آن را از آن خود کنند کنگند نمیدانست که زشت شده هیچ کس به او نگفته بود او با چنان لحن استواری بعدی کاندید را به او یادآوری کرد که کاندید خوب جرأت نکرد آن را رد کند بنابراین نزد بارون رفت تا به او بگوید که با خواهرش استواج خواهد کرد بارون گفت: من هرگز این فرومایگی او و این گستاخی شما را تحمل نخواهم کرد. دستکم من نمیگذارم چون این شرم اتفاق بی افتد. که چه؟ فرزندان خواهر من نمی توانن جزو هیچ کریسای جامعه ای در آلمان باشند. نه، خواهر من هرگز با کسی مگر بارونی از امپراتوری استواش نخواهد کرد. کونگوند خود را به پای او انداخت و اشک ریخت. او تکان نخورد. کاندید به او گفت، خیلی احمقی، من تو را از کشتی ها نجات دادم، بهای های آزادیت را پرداختم، بهای به آزادی خواهرت را پرداختم، داشت ظرف می شوست. او زشت است. من آنقدر خوب هستم که او را زن خود کنم، و تو باز حق خودت می دانی که با این درخواست مخالفت کنی، اگر بخواهم از غریزم پیروی کنم، دوباره همینجا تو را خواهم کشت. باران گفت، تو می توانی مرا دوباره بکشی. ولی تا وقتی زنده هستم نمی توانی با خواهرم استواج کنی.